به نام خدای یگانی مهربان سلام در این مجال افسانهای ای رو از مردمان سرزمین آذربایجان براتون می کنم به نام گندمی به اندازه یک تخم مرغ برگرفته از کتاب افسانه های آذربایجان جلد دو و سه برگردان حمید بخشمند. امیدوارم از شنیدن این افسانه لذت ببرید. رسگویان شیرین سخن چنین حکایت کردند که در گذشته‌های دور روزی پادشاهی توی خزونش در حال حسابرسی دارایی و ثروتش بود که یه دفعه چشمش به دونه گندمی افتاد که به اندازه یه تخم مرغ بود پادشاه که از دیدن اون گندم حیرت کرده بود قبل از اون که کار حسابرسی مال اموالش رو تموم بکنه دونه گندم رو برداشت و اون رو با خودش به قصر برد و دستور داد وکیل و وزیر و اطرافیانش در قصر جمع بشن. بعد از چند دقیقه همه توی قصر حاضر شدن. پادشاه فوراً بدون مقدمه گندم رو به اونها نشون داد و از تک تک حاضران در قصر پرسید شما فکر میکنید چرا این گندم اینقدر بزرگه. راز بزرگی این دونه گندم در چیه؟ همه افراد حاضر در قصر در حالی که از دیدن گندم به این بزرگی به حیرت و شگفتی افتاده بودن نگاهی به همدیگه انداختن و سکوت کردن پادشاه، یه بار دیگه سوالش رو تکرار کرد و گفت تکرار میکنن چه کسی میدونه راز بزرگی این گندم در چیه؟ باز هم همه سکوت کردند وقتی پادشاه واموندگی اونا رو در کشف راز دونه گندم دید رو به وزیرش کرد و گفت وزیر بین اینها مقام تو از همه بالاتره پس انتظار میره عقل و تدبیرت هم از اینا بیشتر باشه از تو میخوام که در این باره پرسجو کنی و پرده از روی این راز برداری وزیر که کمچنان مات و مفهود بود گفت قبله عالم به سلامت باد واقعا هیچ کس تا با حال ندیده گمان نمیکنم کسی در این بار چیزی بدونه پادشاه با قاطعیت و تحکم گفت هر طوری شده باید راز این مسئله برای من روشن بشه از امروز چه روز به تو مهلت میدم تا هر کجا و پیش هر کسی که خواستی بری و راز این معما رو کش کنی وزیر وزیر با نگرانی گفت گرفته یا به سلامت باد اگه اگه نتونستن چی قربان پادشاه با خون سردی پاسخ داد خیلی ساده است دستور میدم جردانت رو بزنن به همین راحتیو. و بعد همه افراد حاضر در قصر رو مرخص کرد و خودش همچنان محو تماشای دونه گندم بزرگ شد اما وزیر، وزیر بیچاره که چاره جز اطاعت از فرمان پادشاه نداشت آشفته و پریشان حال به خونه اومد همسرش با خوشحالی به استقبالش اومد و وقتی چهره ی و افسرده شوهرش رو دید ازش پرسید چی شده؟ چرا اونقدر قمگین و پریشان پریشانحالی؟ وزیر آهی کشید و به گوشه ای رفت و تمام ماجرای دونهٔ گندم رو برای همسرش تعریف کرد و بعد به اون گفت که باید فردا اول وقت به دنبال کشف راز بزرگ اون دونهٔ گندم به این شهر و اون شهر بره وگرنه پادشاه گردنش رو میزنه زن که حال پریشون شوهرش رو دید اونو دلداری داد و گفت نگران نباش من مطمئنم تو راز اون رو کش میکنی. وزیر چیزی نگفت و سخت به فکر فرو رفت. زن هم در دل برای موفقیت شوهرش دعا کرد. فردا صبح زود وزیر از اهل و ایالش خداحافظی کرد و سوار بر براه افتاد. از این روستا به اون روستا از این شهر به اون شهر روزها و هفته ها رفت و رفت به سراغ پیر و پیر زنهای سال خورده و دنیا دیده رفت به سراغ آدمهای چیز فهم و نکت سنج رفت اما کسی پیدا نشد تا پرد از راز بزرگی اون دونی گندم برداره وزیر هرچند نومید شده بود اما به راه خودش ادامه بود وزیر بیچاره همینطور که معیوس و نومید اسب میتاخت و پیش میرفت به پیرمرد خوش سیمایی برخورد کرد که روی تکه سنگی نشسته بود وزیر دهنه اسب عصبو کشید و از اسب پیاده شد نزدیک پیرمرد رفت و سلام کرد و کنارش نشست پیرمرد هم با خوشرویی جواب سلامش رو داد و از وزیر پرسید ای مرد از کجا میای و به کجا میری وزیر داستان دونه گندم و معموریتی رو که پادشاه بر احتش گذاشته برای پیرمرد تعریف کرد پیرمرد سری سریع تکون داد و گفت آه, آه، چیز غریبیه من که به جایی نمی رسه. اما اما همینقدر می دونم که این نزدیکی های شهریه که اونجا سه تا برادر زندگی می کنن. اگه قراره میزادی از این راز سر در بیاره فقط از عهده ای اونا ساخته است وزیر با خوشحالی گفت چجوری چجوری میتونم اونا رو پیدا کنم پیرمرد با مهربونی گفت من راه رو به تو نشون میدم به سراغشون برو اگه اونا نتونستن مشکلت رو حل کنن دیگه بی جهت خودتو خسته نکن و تسلیم سر رو تا چی پیش بیاد وزیر از راه نموی پیرمر تشکر کرد سوار بر اسبش شد و برافت وزیر بعد از پیمودن مسافتی به شهر رسید از این اون سراغ سه برادر رو گرفت و بالاخره تونست خونه برادر کوچیکتر رو پیدا کنه وزیر اسبش رو به سرایی برد و خودش با پای پیاده به در خونه‌ی برادر کوچیکتر رفت آروم در زد زنی در رو بهروش باز کرد اما اما اما اما چشمتون روز بد نبینه تا چشم زن به وزیر افتاد شروع کرد به بد و بیرا گفتن و نفرین کردن که یه دقیقه نمیذارن تو این خراب شده راحت باشیم وقت و بی وقت مزاحم میشن و نمیذارن یه جرعه آب راحت از گلومون پایین بره شوهر مردنی منم که ارزن نداره دو قدم بیاد دم در و جوابشون رو بده وزیر که از برخورد زن تعجب کرده بود گفت خواهر تو از کجا میدونی من کی هستم و برای چی در خونه شما اومدم ها؟ و بعد با کمی عصبانیت ادامه داد و گفت مجال نمیدی آدم حرفش رو بزنه حالا بگو ببینم شوهرت خونه است یا نه؟ زن با اوقات تلفی گفت به من مربوط نیست که تو کی هستی و برای چی اینجا اومدی شوهرم خونه است حرفت رو بزن وزیر به گفت بگو بیاد دم در با خودش کار دارم زن گفت شوهرم نمیتونه از جا بخوره بیا بریم پیشش زن کنن وزیر رو پیش شوهرش برد وقتی وزیر وارد خونه شد دید در میون بستری پنبه ای پیرمرد ریش سفیدی که خیلی پیر و سال خورده بود دراز کشیده وزیر بعد از سلام و احوال پرسی تمام ماجرای دونه گندم رو برای پیرمرد تعریف کرد پیرمرد نگاهی به وزیر انداخت و آروم گفت وزیر چیزی به نظرم نمیرسه اما کمی دورتر از اینجا برادری بزرگتر از خونم دارم که شاید اون بتونه کمکت کنه همین الان به سراغ اون برو وزیر از پیرمرد قدردانی کرد و بعد از مدتی جستجو و خونه برادر وسطی رو پیدا کرد وزیر به درخونه برادر وسطی که رسید آروم در رو به صدا در آورد. زن برادر وسطی در رو به روش باز کرد و یه دفعه هرچی از دهنش در اومد نصار وزیر بیچاره کرد. خلاصه، اون چه وزیر در تمام عمرش از کسی نشینده بود از این زن شنید. وزیر از شدت خشم و غضب خون خونش رو میخورد. اما چارهای جز تحمل و صبوری نداشت. وزیر از زن پرسید: خواهر، شوهرت خونه است؟ زن بتوندی گفت: خاک عالم بر سر شوهرم آره خونه است. بیا بریم پیش اون. وقتی وزیر وارد خونه شد، پیرمرد ریش سفید سال خورده تر از برادر کوچکتر رو دید که در میون بستری پنبه‌ای دراز کشیده. وزیر سلامی داد و مشکل خودش رو با اون در میون گذاشت پیرمرد که به سختی میتونست حرف بزنه گفته آه من دیگه هوش و عواصی برام باقی نمونده نمیمونم چیزی به عقلم نمیرسه اما, اما در شهری دور برادری بزرگتر از خودم دارم بهتره به سراغ اون میری شاید اون بتونه پرده از این راز برداره وزیر چارهای جز رفتن نداشت از لطف پیرمرد تشکر کرد و راه خونه برادر بزرگتر رو در پیش گرفت وزیر توی راه با خودش فکر میکرد وقتی برادر کوچکتر و برادر وستی اینقدر پیر و زمین گیرن وای به حال برادر بزرگترشون اون حتما نای حرف زدنم نداره بعد وزیر خودش رو دلداری داد و گفت حتما با ایما و اشاره یه جوری منو راهنمایی کنه. خلاصه وزیر به در یه برادر بزرگتر رسید و با ترس و لرز در رو زد. وزیر منتظر بود که این بار هم زنی مثل برج زهرمار در رو به روش باز کنه و بد و بیرا نثارش کنه اما درست در این لحظه زنی در رو به روش باز کرد و با خوشرویی و ادب پرسید آقا با کی کار داشتین؟ وزیر که از برخورد زن متعجب شده بود با کمی مکس گفت با شوهرتون کار داشتم زن با وقار و ادب تمام جواب داد همسرم خونه نیستن رفتن بازار بفرمید منزل الان تشریف میارن وزیر وارد خونه شد زن بر اینکه وزیر تنها نمونه و احساس کسالت نکنه دو پسرش رو پیش وزیر فرستاد تا با اون صحبت کنه. بعد هم چای و نون و پنیر معیه کرد و از وزیر پذیرایی کرد. وزیر از پذیرایی و مهمون نوازی زن تشکر کرد و که سرگرم گفتگو با پسرها بود جوون رشید و چارشونه از در وارد شد و بعد از سلام و احوال پرسی کنار وزیر نشست و گفت خیلی خوش اومدین، صفا آوردین، آیا خدمتی از دست بنده حقیر برمیاد؟ وزیر گفت از مهربونی و لطف شما ممنونم، من با برادر بزرگتر فلان پیرمرد ها کار داشتم منتظر اومدن اون هستم مرد جوون لبخندی زده و گفت بفرمید خودم هستم امرتون چیه؟ وزیر با تعجب نگاهی به مرد جوون انداخت و بود زده پرسید گفتید شما برادر بزرگتر پیل هستید ولی مرد باز هم لبخندی زد و گفت تعجب نکنین خودم هستم وزیر گفت چطور تعجب نکنم وقتی میبینم برادرای کچکتر از شما از شدت ضعف و پیری نمیتونن از جای خودشونم تکون بخورن اون وقت شما مرد جوان دستی بر شونه وزیر زد و گفت بله بله من از اونا جوانتر به نظر میرسم با وجود اینکه از اونا بزرگترم این مسئله یه حکمتی داره وزیر با تعجب پرسید چه اکمتی؟ مرد جوان گفت به خاطر داری وقتی در خونه‌ی برادرای برادر یک رفتی با تو چه برخوردی شد؟ وزیر به تندی گفت بله بله زنای هر دو برادر شما بعد از باز کردن در با بد زبونی از من استقبال کردن اونا خیلی بد دهن و بد اخلاق بودن برادر بزرگتر که همون مرد جوان باشه گفت آیا توی خونه منم با شما رفتار و برخورد ناشایستی شد؟ وزیر گفت: نه، به هیچ وجه. همسرتون با مهربونی و خوشرویی با من برخورد کرد و با احترام و نهایت ادب از من پذیرایی کرد. مرد جوان گفت: بله، همینه برادر کوچکترم. به این دلیل زودتر از وقت طبیششون پیر شدن که همسرانی بد اخلاق و نادون دارن. وقتی اونا با آدمای غریبه و بیگانه چنان رفتار ای دارن ببین تو خونه با همسرای خودشون چجوری رفتار میکنن. راز جوون موندن من در رفتاری و اخلاق نیکوی همسرمه. وزیر تایید کنن گفت پس راز جوانی دیرپای تو، خوشرفتاری و احترام همسرت مرد جوان گفت همسر من تو تمام روزای سخت زندگی با خوشرویی و صبر در کنار من بود و در غم و دردهای من همیشه شریک و سهین بوده مرد جوان در ادامه حرفاش از وزیر پرسید نگفتی با من چیکار داشتی؟ وزیر گفت ای مرد جوان پادشاه توی خزونش گندمی به بزرگی یک تخم مرغ پیدا کرده و از من که وزیرش هستم خواسته راز بزرگی دونه گندم رو پیدا کنم وگرنه دستور میده گردنم رو بزنن من به همه جا سر زدم و از خیلی ها در این باره پرسجو کردم تا سرانجام بعد از جستجوهای بسیار برادرات نشونی تو رو به من دادن مرد جوان گفت ای وزیر مدتها قبل توی روستای ما مردی زندگی میکرد که قطعه زمینی از پدرش به ارث برده بود. روزی چرخ گردون چرخید، بخت و اقبال از اون برگشت و تنگ دست شد و مجبور شد زمینش رو بفروشه و کسی زمینش رو از اون خرید. از غذا روزی خریدار به شخ اختدن زمین هفت خوم طلا از زیر خاک پیدا کرد. بعد روی خومهای های تلا خاک ریخت و رفت دنبال فروشنده زمین و به اون گفت برادر وقتی داشتم زمین رو شخ می زدم هفت خوم طلا از زیر خاک پیدا کردم از تو می که بیای و ها رو ببری فروشنده زمین گفت نه ها دیگه مال من نیست اگه مال من بود پیداشون کردم و بر می داشتم. حالا دیگه زمین زمین توه و هر که از زیر خاک پیدا کنی هم مال توه خریدار گفت منم از تو فقط زمین رو خریدم طلا که نخریدم، پس زودتر بیا و طلاهات رو ببر خلاصه خریدار و فروشنده زمین هیچ کدوم رازی نشدن برن و خومهای طلا رو بردارن و بحث و مشاجره بالا گرفت و کار به جایی رسید که قرار گذاشن پیش قاضی برن و از اون بخوان تا تکلیف تلاها رو روشن کنه خریدار و فروشنده زمین پیش قاضی رفتند قاضی بعد از سوال و جواب بسیار پرسید آیا شما دو نفر کسی فرزند دختر یا پسر داره خریدار گفت جناب قاضی من پسری پانزده ساله دارم فروشنده به گفت منم منم دختری پانزده ساله دارم قاضی گفت خب حالا بهتر شد من دخترت رو به عقد پسر این یکی در میارم. شما هم طلاها رو به این پسر و دختر بدید تا زندگی تازهی رو شروع کنه خریدار و فروشنده هر دو از این حکم مغازی با کمال میل استقبال کردن. به خاطر صدق و صفای دل این دو مرد یعنی خریدار و فروشنده اون سال هرچی گندم در اون زمین کاشتن موقع برداشت محصول دیدن هر دونه گندم به اندازه یه تخم مرغه وزیر با حیجان از جوون پرسید پس گندمی که توی خزانگ پادشاه پیدا شده از همون گندماز ها؟ وزیر از مرد جوون یا همون برادر بزرگتر پیرمرد ها که راز بزرگی دونه گندم رو به اون آموخته بود اظهار رضایت و قدردانی کرد و بعد از خداحافظی راهی شهر و دیار خودش شد وزیر درست پایان روز مقرر شده یعنی چهلمین روز به شهر رسید و بلا فاصله به حضور پادشاه رفت و راز بزرگی گندم رو برای پادشاه بازگو کرد پادشاه بعد از شنیدن حرفای وزیرش به اون خلعت و انعام زیادی داد و از تلاش اون تشکر افسانه آزری گندمی به اندازه یک تخم مر رو از کتاب افسانه‌های آذربایجان برگردان حمید بخشمند براتون نقل کردم. قصه ها و افسانه ها بخشی از میراث فرهنگی هر قوم و ملتی هن. در افسانه ها و قصه ها جنبه های ارزشمند سنتی و های فرهنگی و روانشناسی اقوام مختلف به چشم می هوادث و رویدادهای اجتماعی بیان میشه و ویژگیهای خاص سنتی و فرهنگی هر قوم انعکاس پیدا میکنه ایران ما سرزمینیه که در منطقه خاور میانه فرهنگ فرهنگهای قدیم رو به خودش اختصاص داده و ما باید قدر این فرهنگ غنی و کهن رو بدونیم و اون رو پاس بدریم هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سالپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صداوندار اکبر نیکایی، پیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه‌ای دیگر بدروت